داستان پول همه کار میکنه یکی بود یکی نبود شاهزاده خیلی پول داری بود که هوس کرد درست روبروی قصر پادشاه یه قصر قشنگتر از اون برای خودش بسازه ساختن قصرش که تموم شد دستور داد تا سردر قصرش بنویسن پول همه کار میکنه پادشاه از قصر بیرون اومد و چشمش به اون نوشته افتاد. فوران فرستاد دنبال شاهزاده که چون توی شهر تازه وارد بود، هنوز به دربار نرفته بود. پادشاه میخواست شاهزاده رو ببینه. وقتی شاهزاده اومد پیش پادشاه، پادشاه بهش گفت آفرین، قصر خیلی باشکوهی برای خودت درست کردی. دیگه قصر من مقابل اون شبیه یک کلبست. خیلی خوبه. بگو ببینم تو کی هستی که دستور دادی روش بنویسم پول همه کار میکنه؟ شاه که متوجه شده بود نکنه زیادی شروعش کرده جوای پادشاه رو اینجوری داد. بله قربان من دستور دادم که بنویسم پول همه کار میکنه. اما اگه شما دوست ندارین همین الان دستور میدم که پاکش کنن. پادشاه دوباره گفت منظورم این نبود فقط میخواستم بدونم قصد از این نوشته چیه فکر کردی که با پول میتونی منو نابود کنی شاهزاده متوجه شد که تو وضعیت بدی گیر کرده و فوران گفت نه اعلی حضرت منو ببخشین فورا دستور میدم که پاکش کنن اگه از قصرم خوشتون نمیاد دستور بدید تا همین الان خرابش کنم پادشاه گفت بهت گفتم نه بزار باشه اما چون میگی با پول میشه هر کاری کرد، باید نشونم بدی. بهت سه روز مهلت میدم تا بتونی با دخترم حرف بزنی. اگه تونستی حرف بزنی، خب، باهاش عروسی میکنی. اما اگه نتونستی، میدم سرتو از تنه جدا کنن. شاهزاده حسابی گیر افتاده بود. نه غذا میخورد و نه آب. شبام اصلا نمیتونست بخوابه. خوابه. روز شب به این فکر میکرد که چطور جون سالم به در ببره. روز دوم دیگه مطمئن شده بود که کاری از دستش بر نمیاد. با خودش گفت باید وسیعتم رو بنویسم. دیگه امیدی نیست. دختر پادشاه توی قلعه بود و صد تا نگهبون ازش مراقبت میکردن. شاهزاده بیچاره رنگ پریده و پریشون احوال خودش رو دیگه کم کم داشت به دست مرگ می سپرد. دایه شاهزاده یه پیرزنی بود که اون از بچگی بزرگ کرده بود. اون روز اومده بود ملاقات شاهزاده. پیرزن بیچاره با دیدن قیافه پکر شاهزاده موضوع پرسید. شاهزاده با شک و تردید موضوع رو تعریف کرد. پیرزن گفت خب که چی؟ فکر می چاره نداره؟ من فکرشو میکنم تونه نگران نباش. پیرزن لنگ لنگون رفت پیش مهمترین زرگر شهر. بهش سفارش یه غاز تو خالی داد. به زرگر گفت قازی که برام درست میکنی باید به اندازه یه آدم باشه که دهنش هم و بسته بشه. همه یه تن این قاز باید از جنس نقره باشه. واسه فردان باید آماده باشه. زرگر اعتراض کرد واسه فردا دیوونه ایم اگه پیرزنه گفت گفتم واسه فردا باید آماده باشه و بعدشم یه کیسه طلا بیرون آورد و گذاشت رو به روی زرگر به زرگر گفت این یه بیانه است. فردا مبقی رو بهت میگم. زرگر با تحجب به پیرزنه نگاه کرد و بهش گفت حالا که جریان از این قراره باشه امتحام میکنم خلاصه اینکه فردا قاز نقره ای آماده بود. یه چیز معرکه ای شده بود. پیرزنه بعد از اینکه گازو از زرگر تحویل گرفت، اومد پیش شاهزاده و بهش گفت تو باید ویورونت رو برداری و بری توی این قاز. وقتی که رفتیم تو خیابون، شروع کن به نواختن ویورونت. پیرزنه و شاهزاده تو شهر را افتادن. پیرزن قاز و با یه تناب دنبال خودش میکشید شاهزادهاونتو ویولون میزد مردم حیرت زده راه و باز میکردند و همه با عجل خودشونو به پیرزن میرسوندن. این خبر تا ای که دختر پادشاه اونجا بود پیچیده بود شاهزاده خانم از پدرش خواست تا بهش اجازه بده که بره وو این رو تماشا کنه پادشاه گفت فردا آخرین روز محلت این شاهزاده پرمده است. تو فردا میتونی بری قاز ببینی. شاهزاده خانم به پدرش گفت پیرزنه فردا از این شهر میره. من نمیتونم تا فردا منتظر بمونم. به خاطر همین پادشاه اجازه داد، قاز ببرن تو قلعه ای که دخترش اونجاست تا اونم بتونه این قاز رو از نزدیک ببینه. این همون چیزی بود که پیرزنه انتظار داشت. شاهزاده خانم عاشق آهنگی شده بود که از دهن قاز بیرون میومد. تا با قاز نقره تو اتاق تنها شد یهو دهن قاز باز شد و شاهزاده از توی قاز بیرون اومد شاهزاده خانم خیلی تعجب کرده بود شاهزاده بهش گفت نترسید نترسید من همون شاهزادام باید بتونم باهاتون حرف بزنم اگه با من حرف نزنید تا فردا پدرتون سرم و احسام جدا کنه. شما میتونید بهش بگید که من باهاتون حرف زدم تا اینجوری من نجات پیدا کنم. فردای اون روز پادشاه فرستاد دنبال شاه بهش گفت: "بگو ببینم پولت تونست برای صحبت با دختر من کارساز باشه یا نه؟" شاه جواب داد: "بله قربان." پادشاه گفت: "چطور ممکنه؟" بگی بگی باهاش حرف زدی؟ شاهزادهنگو گفت اگه باور نمی کنید از خود دخترتون بپرسید. پادشاه دختر خودش رو احضار کرد و بهش گفت: و دختر پادشاه برای پدرش تعریف کرد که چطور شده که با شاهزاده حرف زده. چون شاهزاده توی همون قاضی که پدرش اجازه داده بود وارد قصر بشه، مخفی شده بود و اینطوری بود که با همدیگه صحبت کرده بودن. بنابراین، پادشاه بعد از اون قضیه تاج رو از روی سرش برداشت و گذاشت رو سر شاهزاده. و بهش گفت، تو نه تنها پول داری برکه مغزت هم خیلی خوب کار میکنه. خوشحال باش که من قرار دخترم و به همسری تو در بیارم. آیا تا به حال آرزو کردین که به سرزمین‌های سحرآمیز سفر کنین؟ جایی که پریها و کوتوله ها زندگی میکنن؟ کانال هزار افسان، همونیه که دنبالشین، هم. دنبال. که جایی که داستان‌های افسانه‌ای و اسطورهی سراسر دنیا به صورت صوتی و جذاب برای شما روایت میشه. کانال تلگرامی هزار افسان